باب پنجون در عشق و جوانی حکایت حسن میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بندی صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی اند چگونه افتاده است که با هیچ کزیشان میل و محبتی ندارد چنانکه با عیاز که زیادت حسنی ندارد. گفت هرچه در دل فرو آید، در دیده نکو نماید. هر که سلطان مرید او باشد، گر همه بد کند، نکو باشد. وان که را پادشه بیاندازد، کسش از خیل خانه نن بازد. کسی به دیده این اگر نگاه کند، نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی، وگر به چشم ارادت نگاه کنی در دیو فرشتهایی نماید به چشم کروبی. کر